عش 15ام. حسام همشاگردیمان بود. چهار تا کوچه بعد از ما می نشینند. از دیکه که خط همه حسام خلسه داش می کنند که البته نظر خودم غیر از این است. پاری وقتها هم که نظرم غیر از این نیست محال است به روش بیاورم. این را از من بشنوید که اگر مخ کسی پاره سنگ برمیدارد یا از بلد روزگار نصف عقل است به هیچ عنوان نباید به روش زد این مسئله از ابتدای تاریخ وجود داشته و چیزی نیست که دست خدا آدم ها بوده باشد. بس اینها از جای شروع شد که با بزرگ حسام و داداشش یک جفت خواهر دوقلو را می کنند که حالا ما در بزرگ و خواهر بزرگ حسام هستند بعد از این همه سال هم که هزار ماشا الله برای خودشان تایفه بزرگی شده اما همه چیزهای دیگرشان به یه خوبی از کار در نیامده است میخوا بگویم از لحاظ ژنتیکی دچار قهر طبیعت شدهاند یا چی؟ اما کلهم حالات به خصوصی دارند که اگر طبیعت با انسان آشتی باشد این بلاها را سرش نمیآورد. مثلا ع جهودها همه کارهاشان روهم هم هست. هم است. هر جا بخواهند برون اتوبوس میگیرند مهمانی هم که بروند عره و اوره و شمسی کوره را دنبال خودشان راه میاندازند. دوهاشان هم که نگو، تایف ای. یک دور تسبیه آدم میریزن سر یک نفر. نه به کسی دختر میدهند نه اینکه از بیرون برای پسرهاشان زن میگیرند چون یکی از اعتقادات مهمی که دارند این است که عقد پسر و دخترمو را توی آسمان ها بزدهند. الان انان کار به جای کشیده که پدر حسام تنهایی سه چهار تا نسبت فامیلی با زن خودش دارد یعنی هم پسرامو مو و هستند هم دختر دا پسر امه، زن و شوهر هم که هستند. یک چیز دیگری هم هستند که الان یاد نیست اگر خودش باشد به میگوید. روز به روز هم دارن بیشتر توی هم فرو میروند. یک بار بدون در نظر گرفتن اینکه با حسام شوخی ندارم بهش گفتم: حالا بازم خدا رو هم کرده که کارتون تو همینجا فیصله پیدا کرده. وگرنه که حساب کتابتون با کرام کاتبین بود. چون بی خود و بیجهت قضیه را ناموسی کرده بودم، جوابی تحویلم داد که من الان از گفتنش خجالت می کشم. فقط همینقدر بگویم که حرفش مستقیما به مادرم مربوط میشد. سر همان موضوع یک ماهی با هم قهر بودیم. دیگر همون شد. بعد از آن تا حالا تقریبا هیچ شوخی با هم نکردیم. نه بدنی، نه هیچی. تازگی از این ورانور به گوشم خورده است که یکی دوتا از تازه عروس دامات پیش متخصص کنترل جمعیت رفته بلکه یک تکاری به این آزای قاراش میش بدهند. این کارها رو باید به فال نیک گرفت. اما من یکی چشمم آب نمیخورد که اینجور انفجار جمعیتی با حرف و مشاوره و این دکتر آن دکتر کردن کنترل شود. راستش من در مورد اینها حتی به نسل کاشی و هاراگیری هم فکر کرده بعد از ظهر شلو کالا کردم و رفتم سراغش. سر کوچه کواهن کوچه خودشان دیدمش اول کاری زیاد تحویلش نگرفتم همیشه وقتی از کسی پول دستی میخوام همین بساط رو پیدا میکنم. گربه را دم هجله باید کشت برای اینکه مستقیم بهش رو نزده باشم کمی باش قدم زدم و در مورد نمیدانم چه موضوعی اظهار نظر کردم. سر بحث را که تحویل گرفت دیگر ورکان معامله نبود. اقلش سرو سر به ساعت در مورد مسئله فقر فرهنگی با من گپ زد. با اینکه وجود خودش را مدیون همین مسئله فقر فرهنگی و, زاد و ولد بیرویه است اما مگر بی خیال می‌شد. راجع به فرهنگ عمومی و گسترش وسایل ارتباط جمعی هم چیزهایی گو. بعدش همداست تا گمبه بار رئیس جمهور وقت مملکت کرد آرام آرام سعی کردم بحث را به سمت کمک به هم نوع از از افراد کم به جامعه منحرف کنم ولی هیچ راه نمیداد تقریبا همه حرفاش را تایید بلکه بحث را به سرانجامی برساند. انصاف می دهید که چارهای هم غیر از آن نداشتم صحبت هایش که نرم نرمرگ تهکشی تازه گفت بلش که این حرفا حرفم خودت چطوری؟ وقتش رسیده بود توی درم تاسه شمردم و بی هوا گفتم خوبم سیصد و پنجاه هزار تم میخوام داری بدی ردگن بیاد خوشگش نزد ولی اگر دقت میکردید حالت چهرش کمی عوض شده بود دوباره گفتم دوماهه واسه چی میخوای خیلیه واسه چی میخوای همه همین را میپرسند به خدا هر ناکسی که میخواهد سر کیسه را شر همین را میپرسند آه کوتاهی کشیدم و گفتم دهند آره بابا بگو کف دستم را روی لپم گذاشتم و گفتم این تم بمیره اخمتخ تخمی کرد که یعنی بهش برخورده است گفت آره پس چی تو هنوز آدم تو نشناختی؟ کاری که کردم این بود که دستم را به طرفش دراز کردم و گفتم مردونه مردونه راستیاتش واسه یه عمر خیره فوری گفت ایوه خواهرت خواستم بهش بگویم نه مادرت اما حرفم رو گرد دادم گفتم نه واسه آزادی یه زندونی چکه این را که نگفتم یک جوری نگاهم کرد که اگر راه داشت در جا حرفم رو پس می گرفتم. گفت کی است فامیله؟ از آشناهامونه قشنگ معلوم بود که دارم بهش برگ میزنم. و کسی که می به آدم پول قرض بدهد این را سریعتر از هر کسی میفهمد. حسام گفت کیتون میشه اه چندون نزدیک نزدیک نیست از آشناهای خیلی دوره پس واسه چی تو رو فرستادن دنبال پول همینو بگو به جون تو نباشه به جون پدرت الان یه هفتهی تمامه از صبح میزنم بیرون دنبال پول تا آخرشه فقط منم نیستما همه با هم جلو روم که چیزی نگفت ولی بالاخره نباید خیار کرد که مردم از پشت کوه آمدهاند انگشت شص و صد را روی مالی و گفت مطمئنی؟ گفتم، از چی؟ که پای زندونی چک در میونه از این حرفش کاشف فهمن آمد که نخشم لو رفته راه فرار نداشتم، گفتم نه فقط گفتم نه گفت، یعنی چی؟ پس این همه پول باز چی میخوای؟ بین خودمون میمونه؟ آره بابا میمونه؟ مردونه؟ پف قایه میکرد و گفت اوه. مردونه؟ دیگر باش دست علی ندادم گفتم واسه مامانم میخوام عزیزو پول قرض کرده حالا باید پس بده یه وامیم هم داره که دو ماه دیگه در میاد اون موقع میگارم پسیت میدم مولا یه درزش نمیرف کاش از اول همین را گفته بودم گفت باشه خبرت میکنم کی خبرم میکنی؟ خودم که ندارم باید به بابام بگم شانس من این یکی هم باید به باباش میگفت فقط فرقی کار این بود که حسام مثل رضا چلوفتی نبود. وانگهی بابای حسام یک مکانیکی به چه بزرگی دارد و برای اینکه بخواهد پول را اخ کند حداقل مشکل مالی نداشت. میخواستم با حسام خداحافظی کنم که یک مرتبه یاد سکه مامان افتادم. مامان از دار دنیا یک سکه طلای طرح امام داشت که گذاشته بود سر عقد پسرخاله بزرگم بهش بدهد. بزرگ که گفتم مربوط به پسر خال نه خاله. چون من کلا یک خاله که بیشتر ندارم. از اینکه چشمم به تنها دارایی مامان بود جا به جا قصهم شد اما مجبور بودم یکی از کارهایی که احتمال قرض گرفتن رو میدهد این است که رقم کمتری پیشنهاد بشود گفتم راستی اگه 250 تومان باشه خوبه ها راه دستت هست دو ماهه اینکه هی میگفتم دو ماه دو ماه هیچ فکری یا حساب کتابی پشتش نبود فقط میخواستم خاطر جمع بشود که قص ندارم پولش را بالا بکشم وگرنه ممکن بود تا سالهای سال نتوانم پولش را تصویر کنم گفت، تا کی میخوای؟ همین الان یعنی نهایتاً تا کی وقت داری؟ دیگه نهایتش تا شب تا شب که فکر نکنم جوشه تا هر وقت تونستی؟ ببینم چیکار میکنم ببین چیکار میکنی؟ امیدوارانه ازش جدا شدم آن شب قضیه کار جدید را مفصل برای مامان توضیح دادم اما هیچ استقبال خوبی ازش نشد وامازش این بود که چند دقیقه بعدش حتی به هم حمله هم شد. هرچه بیشتر توضیح میدادم بیشتر گند می‌خورد به کازه کوزم. حیف شد. اگر آن کاتالوگ دستم بود معجزه میشد. به جاش از آن شکل‌های گیلاسی شکلی که هادی برایم کشیده بود برایش کشیدم اما انگار که دارم با دیوار حرف میزنم. یکی از مشکلات مهمی که دارم و تا امروز هم پابرجاست این است که حتی مادرم هیچ وقت من را به اندازه کافی قبول ندارد. برای رفع این سوء که به وجود آمده است همه کاری هم کردم که به گمانم همانها کار را خرابتر کرده باشد چون من و مامان و شیما هر ستایی توی اتاق بالا میخوابیم منتظر شدم همچه که برای خواب خاموشی زدیم یک بار دیگر موضوع را توی تاریکی باش در میان گذاشتم باز هم قبول نکرد تقصیر شیما هم بود کرمکی شده بود زیر جلکی سوسه می و نمیگذاشت کارم را درست انجام بدهم نیم وجب قد و بالا دارد ها، اما یک چشم سفیدی شده که آن سرش نپیدا. چاره این نبود غیر از اینکه نیم ساعت تمام در مورد بدبختی های خودم از زمان طلاق به این طرف و اینکه کمودهای های مالی عاطفی دارن چه پدری ازم در می آورن صحبت کنم. اینقدر با سوز و گداز حرف زدم که چارهش ناچار شد. سکه را شبانه ازش گرفتم، ولی خیال میکنین برای خودم بیشنگیدم؟ نب هر وقت کار اینجوری بیخ پیدا می کند از ته دل آرزو میکنم که ای کاش به مقصودم نرسیده بودم جدی میگویم. گویم من رو من را چجوری شناخته اید ولی از آن میتواند به راحتی کمرم را خرد کند آن شب حتی کمی گریم کرد که خوشبختانه زیاد جدی نبود.